ولم خدلانا ولم جبين بسم الله الرحمن الرحيم تمام الحمد والصلاة ستائش بخداوند یکتا و بهمتا درود و صلوات فراوان بر رسول الله صلى الله عليه وسلم برادراني مهاجر ومجاهد السلام عليكم رحمة الله وبركاته به برنامه امروزی ما خوش آمدید جمعه شما مبارک خداوند زلجلال را سپاسگزاریم که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیوی صدای جندالله و خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم امروز جمعه تاریخ دوازده جمادستانی مطابق چارمه حرکت اسلامی اوزبکستان رادیوی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه می دهد خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی ما مورد پسند شما قرار بگیرد سخن بدرازا نمی کشانیم می راییم به طرف داشته های برنامه امروزی در برنامه امروزی سلسله اندرس ها مصاحبه صدای جندالله با برادران مجاهد ادامه دروسی مفتی ابو زرعظام. اختصاصی با مناسبت شهادت شیخ استاد محمد یاسر رحمه الله و همین طور تحولات یک هفته با جند الله باشید بعد يهتز في عطفيه بين هذا الذي كان ان درسها مرده و سایه بر غبارش بیفشان و خارش بیکن تحمل چو زهرت نماید نخواست ولی شهد گردد چو در طاق رست تو با خلق سهلی کن اینک بخت که فردا نگیرد خدا بر تو سخت تو جای پدر چی کردی خیر که همان چشم داری از پسرت تو خود را چو کودک ادب کن بچوب گرزگران مغز مردم مکوب تو غافل در اندیشه سود مال که سرمایه ای عمر شد پایمال، بکن بیکن سرمه غفلت از چشم پاک که فردا شوی سرمه در چشم خاک. تو نیکو باش تا بد سگال، به نخصی تو گفتن نباید مجال. جفا پیشگان را بده سر بباد، ستم بر ستم پیش عدل استو داد. خوب شنوندگانی عزیز، بودوت اندرس های امروزی خداک آموردی پیشند شما قرار گرفته باشددم احرااب منطورري لذته وعقذ خلف اد الشہادۃ یا ابطال سلسله مصاحبہ ها شنوندگان عزیز رادیوی صدای جند اللہ بخش مصاحبہ های رادیوی صدای جند خوش آمدید در این هفته رادیوی صدای جند اللہ مصاحبه را با یک برادری حراتی انجام داده که در این اواخر به دیار عزت جهاد آمده است بیاید از خود این برادر بشنویم که ایشان چی گفتنی ها و نصیحت دارند برادری محترم بفرمایید بر رادیوی صدای جند خوش آمدید الحمد لله الذي جعل الجهاد زروة سلام الإسلام والصلاة والسلام على من قال أمرت أن قاتل الناس حتى يشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية صدق الله العظيم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 توفیق داد تا در این بخش رادیویی اشتراک نمودم نام بنده ناصر می باشد لحظاتی که به حضور شما قرار دارم نخواهم مختصر ارتباط به جهاد فی سبیل الله چند دقیقه با شما صحبت نمایم الله زلجلال می فرماید که اینالذین جاهد و فینا لنهدین هم همان آن کسانی که در راه ما جهاد می کنند ما آنها را به راه راست هدایت می کنیم. حدیثی که قبلا روایت نمدام رسول مقدس اسلام صلی الله علیه و سلم می که المجاهد و من جاهد نفسه في طاعه الله مجاهد جهاد کننده کسی میباشد که خودش را به طاعت و اوامر خداوند الزجلال هو بیان و اطاعت از اوامر خداوند الزجلال باشد. اوامر خداوند الزجلال فرق نمی کند گاهی اوقات دین از ما این را می خواهد که با زبان دعوت کنیم و گاهی اوقات از ما مال داشته باشیم مال و دارایی می خواهد و گاهی اوقات از ما جان می خواهد که این جانی که داریم بر راه دین این را به به خاطر دین الله زلجلال این را تقدیم به الله زلجلال کنیم و بیاییم به جهاد تا شهید شویم همه ما و شما می دانیم که جهاد امروز فرض این می باشد ترک این گناه کبیره می باشد اگر کسی منکر شود که امروز جهاد نیست آن به ایمان آن شخص خلل و ایجاد می شود همه ما و شما می دانیم که کفار از چهار اطراف حجوم آورده است و همه مسلمین را در چهار اطراف گرفته است به زنان مسلمان تجاوز می شود اطفال را از بین می برند اما کسی نیست زیاد قلیل می که خیلی قلیل می باشد که برخیزت و به گفته و اوامر الله زلجلال آنها را قبول کند و برخی با این مرتدین جهاد کند و کشیش کند تا این که کلمت الله قرآن عظیم شان در تمام سرزمین ها حاکم باشد می بینید که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر ما میباشد توهین می شود می که به قران عظیم کلام الله جل کتاب مسلمین میباشد به این توهین می شود و قرآن عظیم شان را با تش میزنند به مرمی می زنند اما کسی نیست که ایمانش به جوش بی و بگوید که این که کلام زل جلال می باشد کلامی الله جلال می باشد چرا مسلمین در خواب اند؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم می که زمانی می شود که امت خیش را به یک زرفی مثال می دهند که از چهار اطراف مردم حجوم می آورند و حمله می کنند برای این صحابه پرسان کردند که یا رسول الله آیا امت شما در آن وقت قلیل هستند کم هستند رسول خدا صلی الله علیه و سلم می میفرمایند که نه امت من خیلی زیاد می شوند مثل امروزه که ببینیم مسلمان ها چقدر زیاد است میفرمایند که دو چیز است که امت من را باعث میسازد سازد که جهاد نکنند در راه الله زلجلال حرکت نکنند می فرمایند که حب دنیا و کراهیت الموت دوست داشتن دنیا و فراموش کردن مرگ امروز اکثریت مسلمین را که در جای خود نشستند هم از علما و عوام و طلاب العلم سبب این است که به دنیا محبت کردند و مرگار را فراموش کردند می دانند که مرگ حق است اما کوشش نمی کنند که برای آخرت توشهی برقرار کنند ما و شما اگر سیرت را مطالعه کنیم ببینین که رسول اکرام صلی الله علیه وسلم در راه دعوت چقدر ها را دیدند دندانشان شهید شد حتی به طائف رسول خدا صلی اللہ علیه و را میرفتند که قوم مادری خیش را دعوت کنند چنان رسول اکرام صلی اللہ علیه و را با سنگها زدند که در زیر سایه نشستند کفر خیش را میخواستند از پای خیش بیرون کنند کفرشان بیرون نمی‌شد. آن قدر خون ریخته بود که کفش رسول خدا صلی اللہ علیه و به زخمه های پاهایشان چسبیده بود صحابه را که ببینیم تا دین به این جا رسید تا دین برای ما رسید چقدر ها را دیدند هر یکی از خلفای راشدین از دیگر بزرگان و اولیاء الله را ببینیم در راه دین مشقت دیدند اما ما و شما چرا در راه دین حرکت نکنیم؟ این را بدانیم که فرد فرد ما و شما را الله جلال در فردای قیامت پرسان می کند که چرا برای تو همه چیز مهیا بود چرا به جهاد نیامدی چرا حرکت نکردی چرا از دین دفاع نکردی آن وقت در حضور الله جلال ما و شما چی می بگوییم در زمان حضرت عبو بکر صدیق ردی الله تعالی عنه که یک حکم از احکام قرآن عظیم و که زکات بود بعضی از انسان ها و منکر شده بودند حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه اعلان جهاد کرد اما امروز ما و شما ببینیم در سرات سر دنیا هیچ حکمی از احکام قرآن جاری نیست از خداوند زلجلال می خواهیم که من بنده را توفیق عمل و تمام شنوندگان عزیز را توفیق عمل اینایت بفرماید و از خداوند زلجلال میخواهیم که همه مسلمین را و به خصوص مجاهدین را تقویه نماید و اینها را نسرد بدهد. همیشه دعا میکنیم که الله و منصوری العباد که المجاهدین المتحدین المظلومین خدا یا بندگان مجاهد خیش را نسرت بده و از تمام شنواندگان عزیز این را میخواهیم که به جهاد سهم بگیریم و به دنیا زیاد نرویم Inra, bedani, että kaikeimme ja shammausoliatdarem, va raza'yat Allahizul Jalal rabhar kari, bemad nazarxish begirim. Digar sõhvati nedaram. Assalamu alaykum, rahmatullahi taala wa barakatuh. شنوندگان عزیز رادیوی صدای جندالله این بود مصاحبه ای جندالله با برادران مجاهد ان شاء الله در برنامه‌های بعدی نیز مصاحبه های دیگری را به خدمت شما تقدیم خواهیم کرد با ما باشید شنوندگان عزیز در این بخش از پروگرام توجه شما را به شنیدن سلسله دروس مفتی ابوذر زرعظام جلب میداریم البته موضوع درس امروزی ترهای دشمنان اسلام علیه مجاهدین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبی بعد برادران عزیز مهاجرین و مجاهدین در راه خدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمد لله Shmara, di dem, khushhal shudem, khursan shudem, ki taala, az Afghanistan ki tarkiiben 50 vuotta on markez jihadas, azunja baradaraa, taraf Pakistanovart. Alhamdulillah, shmara min jemii bi ne, ma bi sar khushhal mi shem. Shaka ki baradara Afghanistan, taraf Pakistan miyan. در پاکستان تعلیم گیرن بعضیها در پاکستان فدایی میکنن، بعضیها در افغانستان میروان. امید دلیل است که جهاد که ماوش میکردیست می یک جهاد عالمی است. جهاد افغانی و جهاد عربی و جهاد اوزبکی نیست، بلکه یک جهاد عالمی است. بین المللی و بین است. باز امریکا که با افغانستان حجم کرده است، او مقصدش فقط افغانستان نیست. مقصدش فقط افغانستان نبود او اصلا مرکز جهاد را زدگی است مرکز مجاهدین را زدگی است و افغانستان را نزدگی است فقط همه انصارا و مهاجرا که اونجا بودن او را زدگی است عربا و عجما که اونجا بودن او را زدگی است وگرن افغانستان را نمیزد. برای چی میزند؟ یک فقیر دولت است Ura brai chizad brai mujohidin za degies, brai jihad za degies, talibanu al-Qaeda Ja mi baro drone aziz boyad ma buffahmemke, zid demo che tursiosa traftaiste. Kufar, jahudon a zid demo doran Johad fakadamien niski, hood tra باید مفکوره جهادی باشد. عقیده شما جهادی باشد. کجای باشی؟ عقیده شما اگر جهادی می باشد، انشاءالله شما در جهاد می باشین هر وقت. لیکن اگر تربیت شما فقط سلاح را یاد گرفتن، بارود را، مواد را یاد گرفتن باشد، واسکت را کردن یاد گرفتن باشد، فقط از ویدیو ها، ja baze, bayonatra, xunida, mujahed mujoheddjur, xudagi boxin, moskillaske, ami jihad, don doxta boxar. Mi boyadma, akhideja jihad raba fahmem. Si osate kuffar raba fahmem, jahuduna sora, chikar da istan, der atrofima, izzar uraske uraba fahmem. Mana man astem ki baffidajia, islam muħotib astan. Ba mujoheddin, kisti xaadi astan, xaada, ratalab karda istan. همینطور برادره را خطاب کرده استم، ما من بسیار سعادتمند هستم. امروز نزدیک ترین دشمن ما پاکستان است، ایسای پاکستان است، باز همین دشمن را که اکمالات کرده است او امریکا است. او در افغانستان هم وجود دارد، در پاکستان هم وجود دارد. چرا وجود دارد؟ امریکا چرا در هر طرف وجود دارد؟ چرا که او یک پروگرام دارد؟ و بدون ترتیب کار نمی کند؟ بوش وقتی که اعلان جنگ را کرد علیه افغانستان او یک نقشه را اعلان کرد ترتیب را اعلان کردگی است اما ترتیب را به هم دنیا اعلان کردگی است که مقصد ما همین است لیکن مسلمان امت در غفلت است وقت ما کم است برای امی مختصر همو فقط نقشه را به شما میفهمانیم. فهمانیم نقشه که امریکا چاپ کرد در همه دنیا تقسیم کرد او از 4ار چیز عبارت است یعنی امریکا اعلان کردگی است که ما در ده سال باید هیچ چهار تا چیزا را بکنیم چهار تا چیزا را کردن را امریکا عزم کردگی است. اولش چ اولش هست که خریطای سیاسی که هست در دنیا اورا را تبدیل کردن در دنیا سیاسی خریط که هست نشه سیاسی نقشه که هست اورا را تبدیل کردن. سیاسی نقشه چی طور تبدیل میشه؟ سیاسی نقشهط او تبدیل می که کجا که نظام دموکراسی نیست همونجا نظام دموکراسی جور شود؟ دیموکراسی را میفهمید شما؟ دموکراسی امروز در افغانستان هم وجود دارد در پاکستان در همه دنیا وجود دارد کجا که نظام دموکراسی نیست عزم کرد که در ده سال اونجا نظام دموکراسی جور میکنه. باز در دنیا دید که در افغانستان نظام دموکراسی نست اینجا نظام اسلامی است حجوم کرد گر شیخ اسامہ بن لادن رحمه الله در 11 سپتامبر عمود دو تا مرکز امریکا را نمی زد بازم امریکا حجوم میکرد به افغانستان چرا که اون نقشه داشت همین نقشه را اعلان کردگی است بوش که نظام دموکراسی در همه دنیا جاری شود به پاکستان حجوم کردن ضرورت نیست چرا که اونجا دموکراسی از پیش اساس به هندوستان هم ضرورت نیست، به عربستان هم ضرورت نیست، ضرورت به افغانستان بود، به امی به افغانستان حجوم کرد. باز کجایی که دی نظام دموکراسی نبود، بلکه او ضد دموکراسی مقاومت میکردن. کردن، مثالاً ایراخ بود، عراق کمونیست بود، او نبود، او را هم زد. مقصدش همین بود که نقشه سیاسی تبدیل کرده شود، با همین برادران عزیز امروز ملای امام دیموکراسی شده است، سوپی امام دیموکراسی شده است، کلان کلان رهبرای امام دیموکراسی شده رفتن چرا که امریکا امی را گفت نعوذ بالله بعض مردم امریکا را امروز خدا جرد کرده گیند محی و مومید جرد کرده گیند که امی زنده می کنند همی می کشن. رازق جرد کردن کی رزق میته همین سبب بود که که بدبخ که دین را فروختا دنیا را گرفتن با عواز یک کرسی با عواز یک پرلمنت دین را فروختن را از رهبریت خیانت کرده رفتن فهمیده شد؟ دویم مقصد که دا این نقشه نوشتگی است او چی است؟ نقشه جغرافیایی را تبدیل کردن جغرافیا میفهمید؟ نقشه زمینی نقشه زمینی را تبدیل کردن نقشه زمینی را همی تبدیل کردن که یک برادر با یک برادر بجنگت، شیعه با سنی، سنی با دیگر، با یک دیگر بجنگت. جنگ همه قد زیاد شود که کفار با مقصد خودشان برسند. به همی نقشه زمینی هم امریکا کار را شروع کرد. امروز چی شده است؟ امروز در دنیا برای ما شما حدود هست. گر افغانی هستی در دا پاکستان داخل شدن نمی توانید. پاکستانی هستی افغانستان در آمدن نمی توانید مگر با ویزا لیکن امریکا و یهود نصاره با ویزا محتاج نیستند از کراچی کیما و کشتی کلان کلان که سامان های میارن، می همونجا پایان می شوند سامان را پایان میکنن، کنند باز از کراچی همی تانکر همون ترالر حرکت می کند تا تورخام، باز از تورخام پیشاور کابل می رسد از چمن کویتا کابل می رسد همی طور کرده با افغانستان داخل می شوند او ویزار محتاج نیست چرا که او نقشه زمینی را تبدیل کرده گیست امی دویم مقصد امریکا که برای جنگ ما همه حدود و جغرافیا ختم شود کجای که من می خواهم می زنم برای تیارای امریکا در پاکستان داخل می شود می زند کسی گب زدن نمی تواند لیکن مسلمان غیر ویزا بدون ویزا به افغانستان در آمدن نمیتواند سویم مقصد امریکا چی بود که نقشه اخلاقی و دینی تبدیل کرده شود نقشه دینی و اخلاقی تبدیل کرده شود ثقافت ما تهذیب ما تبدیل کرده شود امروز جوان مسلمان ثقافت خودش را نمیفهمد چرا که در ده سال و در مکتب های انگلیسی و در مکتب های امریکی مکمل ثقافت امریکاییا را یاد گرفتگی است. در افغانستان على صبی المثال میگم در افغانستان که همی پتلون عیب بود امروز ثقافت شدهگی است. حالا که پیش وقتی که ما افغانستان رفتیم همی پتلون را دیده مردم ما را کافر میگفتن شوراوی میگفتن همی پتلون که در خونوکی می پوه ما ما امیر پوشیدن میگشتیم گفت که شورابی است کافر میگفتن دی امروز کابل و د قندهار مردم. با پاتون گشتایستان موسیقی و فن و دیگر دیگر چیز رواج دارد مکمل ثقافت افغانستان و مسل... ثقافت مسلمانان را تبدیل کردند در پاکستان هم همین حالت است در افغانستان هم همین حالت است دختران با کار خودشان هستند پدر هم اختیار نداره گشتایستان آزاد شدند حقوق نسوا حقوق زنا گفته هم آزاد شدهرفته است ثقافت اسلامی و اخلاق اسلامی را تبدیل کردند همین مقصدش بود، چهارم مقصد امریکا دا این بود که دولت و مال و ملک مسلمان ها را قبضه کردن کجای که پترول پیدا میشه، کجای که دیزل پیدا میشه، کجای که گاز پیدا میشه همه را گرفتن امروز از افغانستان، از کوهای افغانستان معدنیات و قیمت باها سنگها را امریکا و ناتو برده است همه ها را تقسیم کردن چرا تقسیم کردن؟ فقط برای کشتن مسلمان نیست. برای دوزدی کردن معدنیات و مال و دولت مسلمان هم است. برادران عزیز ما باید این نقشه را بفهمیم. این نقشه اعلان شده گیست. لیکن مسلمان همینطور غافل است که یگان ملا نیست که در مسجد در محراب و منبر خیسته این نقشه را بیان کند که ای مسلمان در غافلت است ای مسلمان بخیز. لیکن اعلان کرده گیست. پت است دشمن امنیت را اشکار اعلان کرده است باز سوالم از شما این است که دای حالت فتوا به کار است برای جهاد فتوا به کار است یک دشمن که اعلان میکند ما سیاست شما را تبدیل میکنیم نظام شما را تبدیل میکنیم حدود فتوه برای جهاد بکار نیست شنوندگانی عزیز ادامه این موضوع را در برنامه های بعدی فراموش نکنید موضوع اختصاصی به مناسبت شهادت شیخ استاد محمد یاسیر رحمه الله طبيب الحرمين عزیز با موضوع اختصاصی این هفته خوش اومدید البته این موضوع به مناسبت شهادت شیخ استاد محمد یاسر رحمه الله اختصاصی هفته است در این بخش از ولادت تحصیل هجرت و جهاد خدمت و شهادت این استاد بزرگوار به شما معلومات مختصر خواهیم داد ما بنیت شهادت می جنگیم. الحمدلله که اسلام می و درست ما داده بود و اگری درست و عقیده نمی بود گاهی هم جرعت نمی کردیم که بین بیمیلی سلیب را برهبری بری امریکا مقابله کنیم چلو پنج هزار از چل کشور می آن. یک کشور غریب زیر پا می کنن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 اګه میفهم نمی بود ما گاه هم جرأت میکردیم که در جنگ با آمریکا و با, با دست و پنجه نرم کنیم استاد محمد یاسیر پسر اسمت الله هفت سال قبل در ولایت وردک ولسوالی بنچک قریه بومی و چشم به جهان گشود در سن کودکی پدرش را از دست داد و پس از وفات پدر با برادر بزرگش که یک افسر بود در شهر کابل حیات خود را به سر میبرد با اساس زکواتی که داشت از لیثه حبیبیه اول نمره فارغ گردید پس از مدت چند برای ادامه تحصیلات عالی، عازم عربستانی عربستان سعودی شده و در آنجا شامل په هنتون مدینه منوره گردید و مصادف با فراغتش از په هنتون کودتای هفت تور در افغانستان با وقوع پیوست استاد در آنجا سکونت نه نموده دیگر برای جهال غازمی افغانستان گردید استاد یوسر رحمه الله در راستای سیاست نقشهای خیلی ها عمده و کلیدی را بازی نموده است میتوان بر ها و هایی که در آنها ایفای وظیفه نموده است چنین اشاره کرد در آغاز به حیثیت رئیس کمیته فرهنگی جمعیات ایفای Dar فانموده است در حکومت عبوری بحیث حج و اوقاف و در حکومت موقت زید سرپرستی انجینر احمد من حییث وزیر در وزارت بازسازی مصروف انجام وظیفه اما زمان دید که اداره ربانی یک اداره فاسد است پس از سه ماه کار وزارت را ترک گفت مصروف دعوت و تدریس گردید در حکومت طالبان در قدم نخست رئیس کمیسونی فرهنگی و بعداً رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد تعیین گردید پس از مدت توسط حکومت افغانستان اسیر گردید مدت چند را در زندان پولچرخی کابل سپری نمود درون زندانون مات کړي که زندانونه نشه ماته ولی زندانونه زندانونه مدرسه جوړ کای زندانونه پداسه حال بند ډکای چې کافر تاسو ته زندان د کالکولو کا ځای پیدا نکا زندان موري گئی زندان تا نو تو ته دومره خلک تیار کای چې د جیل پاسدار د غد ساتن نه عاجز وي زندان تا دوم رزوانان وروزی چه حکومتون دو غوی تا دی زولانه پیدان شکر لی داد دا اسلام زمن دیر دی داد اسلام مند تروس ندی شلد شوی چه دست نار نه وروزی چه اگه زندان و دی نه نویریگی داد دا دار ثقافت داد دا احتیاط ثقافت داد دا دا مفلات پرستی ثقافت داد دا دنیا دوستی ثقافت داد دنیا محبت ثقافت داد ماد که داد در وره د داد دا زرنه و د قربانای میدان ته د شهادت میدان ته د زولنو او د زنجیر میدان تر و زی او په دې وینو کې بیا جذبه پیدا کوي په دې بدنام قوم کې بیا سابقه غیرتون راو پاره وي د دلی بیرغونه بیا پورتکې او دا جنگ واهله اصلي برته تیارې کې د اخور نه راو بسۍ او په انګریزانو باندې سابقه تاریخ را تازه کوي زه دې ورځو انتظار لرم دا ورځو په ان شاء الله خدای داس په ستر ګراوینی لکه د سره قصر د کرملند د شکاسته ورځی شراوی اما پس از رهایی از زندان بار دیگر از سوی امارات اسلامی من حیث رئیس کمیته سیاسی تعیین و موظف گردید علت و انگیزه اثارت این استاد بزرگوار توسط فوج مرتدی پاکستان دعوت های جهادی و ایجاد روابط نزدیک میان گروه های جهادی بود استاد محمد یاسیر پس از اسارت خود در پشت میله های زندان مدت چند را سپری نمود سرانجام در داخل زندان پاکستان به تاریخ 8 جمادی الثانی ثانی به شهادت رسید. فنحولنا بدمائنا تتفضلو فنحولنا بدمائنا تتفضلو فنحولنا بدمائنا تتفضلو فنحولنا بدمائنا تتفضلو عزيز و اکنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی رسید. البته در این بخش از تحولات داغی یک هفته شما را با خبر می سازیم. افغانستان 4 جمادی الثانی مطابق 27 اپریل یک سخنگوی نیروهای بین بین‌المللی بر رهبری ناتو در افغانستان گفته است شخص ملبس به لباس اردو ملی یک اسکاری نیروی سلیبی را در جنوب افغانستان با ضربی به قتل رسانده است سخنگوی ناتو گفته است حمله کننده پس از تیراندازی متقابل سربازان ناتو کشته شد و در این حال یک سخنگوی وزارت دیپلوماسی آمریکا در واشنگتن گفته است سربازی که به قتل رسیده آمریکایی بوده تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است با تاریخ مذکور مرتض اسماعیل قاسم یار مشاور امور بین‌المللی شورای صلح افغانستان در یک از رسانه های کوفری گفت اطلاعاتی را که این شورا در دست دارد نشان می‌دهد که ملا خیر خیرالله خیرخوا از زندان گوانتانامو رها شده به قطر فرستاده شده است ولی وزارت خارجه آمریکا این گزارشات را رد کرده و میگوید تا کنون آمریکا تصمیم نگرفته است تا کدام زندانی طالب را از زندان گوانتانامو ها کند این خبر که مولا خیرالله خیرخوا ها شده نادرست است و میگوید که خیر الله خیرخواه یکی از پنج رهبر طالبان است که در گوانتانامو زندانی بوده و طالبان خواستار رهایی آنها هند به تاریخی مسکر مقامات محلی افغان می گویند. در جریان درگیری های شدید میان نیروهای ناتو و مجاهدن در ویلایت میدان وردک حوانی در یک منزل صحبت کرد که در نتیجه سیزن کشته شدند الله شاید سخنگوی والی وردک گوت این درگیری زمانی رخ داد که یک کاروان نیروهای نات در ورسوالی چه که چک اینواریت هدف حمله مجاهدین قرار گرفت او گفت هر دو طرف در این درگیری از سلاحهای استفاده کردند معلوم نیست هوانی که در این منزل اصابت کرد از سوی کدام گروه پرتاب شده است و با گفته این مرتاد همچنان در این رویداد چهار تن دیگر زخمی شدند شش جمادی دوستان مطابق با 28 اپریل دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار از ورود 2 تن از استشهدایان اسلام در ساختمان ولایت قندهار خبر دادند گزارش‌ها در یکی از رسانه‌های کفر میگوید این دو شخص در داخل بوتهای خشت و را جابجا کرده بودند که داخل ساختمان ولایت قندهار شده و بعد بر محافظین این ولایت تیراندازی کردن. این درگیری تقریباً یک ساعت دوام نمود که در نتیجه آن بنا بر گفته حکومت مرتدی افغانستان دو تن کشته و یک تنی دیگر زخم برداشتند اما قاریوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته میگوید که در این عملیات 8 تن کشته شدند با تاریخ مذکور سخنگوی آیساف از کشته شدن سه سربازشان در افغانستان خبر داده است وی تایید نموده میگوید که دو تن این سربازان در دو رویداد در جنوب افغانستان کشته شدند و همچنان افزود که در یک ماه در این چین رویداد چلتن از سربازان و ناتو کشته شده اند با تاریخ مذکور باشیندگان ولایت هرات در غرب افغانستان از افزایش واقعات اختطاف در این ولایت ابراز نگرانی میکنند در عین حال آگاهان امور میگوین کسانی که دست به اختطاف میزنند از جانب مقامات دولتی حمایت میشوند اما فرماندهان امنیتی ولایت هرات ضمن تأیید این موضوع میگوید که ارگانهای امنیتی و کشفی به شمول ما و ریاست ملی به این نتیجه رسیده بودیم که شاید ما اختطاف را به نقطه صفر رسانده باشیم اما متاسفانه دو اختطاف پیاپی پی که در این روزها به وقوع پیوستان نه تنها نگران کننده برای مردم بلکی برای ما نیز خواهد بود با تاریخی مسکور. آی می گوید که یک سربازی بین المللی در جنوب افغانستان کشته شده است. در اعلامیش همچنان گفته شده است که این سرباز در یک رویداد زخم برداشته بود جان باخت. با تاریخ مذکور مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت تخار میگویند که در نتیجه سرریز شدن سیلاب‌ها در این ولایت 6 تن کشته و 12 تن دیگر لا درک گردیدند عبدالرزاق زوندا رئیس این اداره به رسانه‌های کفر گفت در سیلاب‌هایی که در ولسوالی چال و نمکاب رخ داد 20 خانه نیز تخریب شده و 500 رأس مواشی تلف گردیدند و با گفته در اثر این سیلاب‌ها راه‌های 6 ولسوالی به مرکز این ولایت و شهر‌های تخار و بدخشان نیز مسدود شده است تخار از جمله ولایت هایی است که چند روز پیش نیز شاهد سیلاب های بهاری بود که به اساسی گزارشها ها 6 کشته و 18 زخمی بر جا گذاشته بود. هفته جمعه دستان مطابق 29 اپریل مقامات امنیتی ولایت جوزجان میگویند که در نتیجه انفجار یک منی کنار جاده در ولسوال به این ولایت دو پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی برداشته اند. محمد اسماعیل سرپرست ولسوال هماوی ولایت جوزجان بر رسانه های کفر گفت که در ریودات یک فرماندهان پلیس سرحدی و یک سرباز پلیس کشته و دو پلیس زخم برداشتن. اند مجاهدین مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته میگویند که در این ویداد 4 پلیس کشته شدند با تاریخ مذکور مقامات در ولایت قندهار میگویند شماره از زندانیان این ولایت از روز شنبه به سود دست به اعتصاب غذایی زدند جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار بر رسانه های کفر گفت این زندانیان بعد از آن اعتصاب غذایی کردند که پس از یک مشاجره لفظی در نتیجه تیراندازی پلیس 3 تن از زندانیان زخم برداشتند با تاریخ مذکور، مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند که حاج محمد وزیر شاوروال ولسوالی سمکنانی این ولایت در یک عملیات مجاهدین کشته شد. فرماندهی امنی ولایت پکتیا در یک تماس تلفنی با های کفری گفت در این حمله که ناواختی روز یک شنبه در منطقه خیلی ولسوالی زرمت صورت گرفت، دو پلیس و یک محافظ شاوروال ولسوالی سمکنانی زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته‌اند. 8 جمادی الثانی مطابق با 3 دههاتند در روزی دوشنبه در ولایت کابل دست به تظاهرات زدند که اشان خواهانی مجازات عاملانی 7 و هشتی ثوران آنها همچنین گفتند عاملان حوادیثی که بدون بالای رویدادهایی که در روزهای 7 و هشتی ثور در کشور بابوکو پیوستند نیز باید مجازات شوند موتاریزان تصاویری از مرتضیان را با خود حمل میکردند و خواهانی محکومی آنها شدند آنها برخی از تصاویر را که در بین آن تصاویر تصویری از مرتض حامید کرده نیز دیده میشد با آتش زدند. <تصفح> نوی جمادستانی مطابق اولی می صد در روز سه شنبه در شرق افغانستان دست به تزارات زدن علت این این بود که دو فرد در نتیجه عملیات نیروهای ناتو و همکاران داخلیشان کشته شدند. مظاهره کنندگان و برایت لغمان میگن که این کشته شدگان افراد عادی بودند، اما مرتدین آنها را مجاهلین قاندن به تعریخ مذکور باشندگان ولایت زابل نیز دست به تظاهرات زدند این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که در نتیجه یک درگیری میانی مجاهدین و نیروهای خبیس ناتو با همکاری مرتدین داخلیشان پنج طفل کشته شدن که طی این تظاهرات راه‌های کابل و قندهار چندین ساعت بر روی ترافیک مسدود بود و هر دو جانب یک دیگر را مسئول کشته شدن اطفال در آن درگیری عنوان میکردن پس از سوپردانی عملیات شب هنگام به مرتدین داخلی این نخستین بار است که تظاهرات به خاطر تلفات غیر نظامیان در افغانستان برپا می‌شود ده جمادات صان مطابق 2 می مسئولان امنیتی در کابل گفتند که در عملیات استشهادی روز چهارشنبه 11 تن کشته و زخمی شدند در این عملیات 4 تن از برادران استشهادی ما یکی از مراکز نیروهای خبیث خارجی در منطقه قابلپای را مورد عملیات استشهادی و مصلحونه خودشان قرار دادند مرتاد جنرال داوود امین بر اساسانه های گفت که در این عملیات 11 تن کشته و 5 تن دیگر و شامل یک شخص نیپالی زخمی گردیدند در این عملیات یکی از این برادران ما با استفاده از یک موتر مملو از مواد منفجره در دروازه این مرکز عملیات استشهادی نمود که در نتیجه آن نظر به گفته مرتدین یک محافظ این مرکز و چهار فرد غیر نظامی کشته شدند. با استفاده از این فرصت متباقی از استشادیان داخل این مرکز شده خبی و نیروهای خبیص ناتو گرولباری نمودند. در این هنگام تن دیگر آنان در داخل این مرکز حمله استشادی انجام دادن پاکستان پانچ جمادی ثانی مطابق 26 اپریل خانواده شهید اسامه ابن الادین رحمه رحمہ الله از پاکستان اخراج کرده شد مقامات پاکستانی گفتند که سه خانم و 11 طفل و نواسای اسامه ابن الادین به عربستان سعودی فرستاده شدند حکومت مرتدی پاکستان پس از اینکه اسامه ابن الادین رحمه الله را پارسال توسط نیروهای ناتو در پاکستان به شهادت رسیده بود خانواده ای وی را دستگیر کرده بودند روز جمعه به عربستان سعودی فرستادند هفت جمادستان مطابقیونه بستونه اپریل یک کمیته بین المللی سری سرخ اعلان کرد که یک دکتر بریتانیاوی برای این م در پاکستان کار میکرد تواسسط اافرادی بن کی او را اهطاف کرده بودن کشته شده است مقامات پلیس و سرلب سرخ را گفته که جسد سر شده این دکتر که 16 سال آممر داشت در کنار یک سرک در نزدیک شهر کوت دریافت شد این دکتر که برنامه سری سرخ را در کویده ایداره می کرد چهار ماپش تواسسی یا گروه نظامانیی مضون اختخاف شده بود 8 8 7 7 8 استاد محمد یاسر رحمه الله در روز دوشنبه در زندان حکومت مرتدی پاکستان به شهادت رسید. استاد یاسر از جمله آن شعر مردانی بود که در وقت جهاد روز رئیس کمیسیون سیاسی حزب اتحاد اسلامی در حکومت مجاهدین به حیث وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان و سپس به حیث وزیر شش ایفا وظیفه میکرد و چند سال بعد سو در قید اداره استخباراتی پاکستان زندانی بود. نوی جمادی الثانی مطابق یک مقام پاکستانی به رسانه‌های کفر است که در نتیجه انفجار یک موین که هدفی رویدای شب نظامی بود، سبب کشته شدن دو غیر نظامی در شهر کویتا مرکز ایالت صوبه برشتان شده است. فرید الله یک افسر پلیس محلی در یک رسانه کفر گفت که این رویداد در روز سه شنبه رخ داد که در آن 12 تن دیگر زخم برداشتند. او گفت که در این رویداد دو مادر حامل شب نظامیان نیز خسارمان شده است. هند هفت جمادی الثانی مطابق 29 اپریل در نتیجه تصادم دو سرویس در هند واشگون شدن آن در یک حفره 20 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخم برداشتند آژانس خبری پرسترس هند میگوید 15 نفر در صحنه حادثه و 5 نفر دیگر در شفاخانه جان باختند سوریه پانجه جماعت سونی مطابق 27 اپریل سرمونشی سازمان مینال متحد میگویت که یک انفجار بزرگ در یک ساختمان ریهایشی در شهر حمور رخ دوت کی در نتیجه آن 16 تن کشته شدند در همین روز در نتیجه یک انفجار در شهر دمشق 9 تن کشته شدند شمار کشته شدهگان در سوریه در حال دوباره افزایش یافته که این بار جنگ میان حکومت و نیروهای طرفدار دموکراسی خارج از مرکز شهر به اوج پی واس با اساس گزارشات اداره فعالین 10 در منطقه قچاق دمشق کشته شدند هشت جمعه دیوستانی مطابق یکی اپریل، اژانس خبر رسانی سوریا میگوید که بانک مرکزی این کشور با یک جزمه پلیس در پایتخت دمشق در روزی دوشنبه توسط راکت اندازهها مورد حمله قرار گرفت. دوباره در شهر ادلیب در شمال این کشور منفجر گردید که در نتیجه آن 20 نفر به رسید. در حمله راکت اندازه چهار پلیس زخم برداشتند و بانک مرکزی نیز کمی تخریب شده است. نوی جماع دستانه مطابق اول مای گروه ناظر حقوق بشر سوریا می گوید که مجاهدین سوریا روی سی شنبه دوازه سرباز حکومتی را در ولایت دیر زور از بین بردن در این رویداد یک غیر نظامی نیز کشته شد این گروه همچنان گفته است که در نتیجه آتشباری نیروهای حکومتی در ویلایت عدلی ده تن دیگر کشته شدند که نو آنان اعضا یک خانواده می باشند هفته جمادی الثانی مطابق 29 اپریل مسئولان استخباراتی لبنان از عملیات کشتی که درون محموله های اسلحه دریاف شده تحقیقات میکنند گمان میرود که این اسلحه به مجاهدین سوریه رسانده میشد اردوی لبنان میگوید که اسلحه ماشیندار مرمی های توپ راکت اندازه ها و دیگر اسلحه در سه کانتینر این کشتی بار شده بود گزارش ها می رساند که این کشتی از لیبیا وارد آبهای لبنان شده است مقامات سوریه چندین بار ادعا کردن که اسلحه از طریق لبنان به مجاهدین رسانیده می شود نایجیریا هفته جمادی مطابقی مطابق 29 اپریل گزارشات از نایجرییا میرساند که حداقل 15 نفر در اثر انفجار در هنگام برگزاری مراسم ایسبیون در یک پوانتون نایجرییا کشته و شمار دیگر در این درگیری زخم برداشتند شاهدان محل میگویند که حمله کنندگان سوار بر موتور و موتورسیکلت بودند که وارد پانتون شده مواد منفجره را پرتاب کرده و به گرول باری آغاز کردند سودان پولیس سودان میگوید که در مرز سودان سی تن از افراد ناشناس را دستگیر نموده بخاطر پرسش در خورتون فرستادن که یکی آن از بریتانیا و دومی آن از نروی و دیگر از جنوبی آفریقا می باشد. ایراق پنج جمادستانی مطابقی 27 اپریل در نتیجه دو انفجار در قوخخانه بوکوا د کشته و بیش از 100 دیگر زخم برداشتند گزارش‌ها می‌رسانند بم یک نخست انفجار کرد در یک موتر اجازه شده بود و انفجار دوم در داخل این قوخخانه رخ داد این دو اینفجار پس از آن رخ می‌می‌دان که یک هفته قبل در نتیجه چندین انفجار در شهرهای مختلف عراق حداقل سی 35 تن کشته و بیش از 600 دیگر مجروح شده بودند اوکراین 5 جمادی الثانی مطابق 27 آوریل رئیس جمهوری اوکراین دستور داده است تا در گزارش‌های گزارش های تحقیق شود که صدری اعظم پیشین این کشور توسط معموران زندان شکنجه شده است رئیس جمهوری این کشور میگوید که من در چوکات صلاحیت خود بلوی سارنوالی این کشور دستور دادم که در این مورد تحقیق کنند امیدوارم که در آینده نزدیک به یک پاسخ مشخص دست یابم با تاریخ مسکر یولیا تیموشینکو در اعتراض به بدرفتاری با وای در زندان از 6 روز بدینسو دست به اعتصاب غذایی زده است در این حال رئیس پالیسی های خارجی اتحادیه اروپا میگوید که در مورد قضیه تیموشینکو عمیقاً نگران است از کیف خواست با فرستاده خاص, خاص اتحادیه ای اروپا اجازه دید تا همراه با متخصصان صحیح وارد اوکراین شده و وضعیت تیموشینکو را مطالعہ کنند همچنان رئیس جمهور آلمان به خاطر بدرفتاری با یوریات تیموشینکو سفر موی آینده را با اوکراین فسخ کرده است یوریات تیموشینکو به جرم سوء استفاده از قدرت زندانی شده ولی خود او این قضیه را دسیسۀ میخونات که بواسطه رقیب سیاسی اش فعلی طراحی و عملی شده است مطابق 28 اپریل، حداقل چهار انفجار یکی از شهرهای شرق اوکراین را به لرزه درآورد. سخنگوی وزارت حالت اضطراری گفت که مجموعاً 27 نفر در این انفجارات زخم برداشتند. یک سخنگوی پلیس این شهر گفت حداقل یکی از این انفجارها در نتیجه جابجا شدن یک وسیله انفجاری مسعون در داخل یک دانی صورت گرفت. رئیس جمهوری اوکراین گفته است در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری افراد شود که در بم‌گذاری این رویداد دست داشتند، هزار دلار جایزه خواهد داد. Tajikistan haft جمادی سالی مطابق بیستونی آپریل، یک دانشمند شناخت شده ای تاجیک با خاطر پیشنهاداتش در مورد اینکه نماز با یواز لسانی عربی بلیسانی تاجیکی ادا شود، زیر تنقید قرار گرفته است. زفر میرزايان که در مقاله های خود در مورد تاریخ و اخویت ملی تاجیکستان شورا پیدا کرده، که در هفته گذشته در ملاقات با موسسین پوانتونی ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه در این مورد صحبت کرده بود، میرزايان گفت که خواندن آیات قرآنی با زبانی که این مردم آن را میفهمند، آنها را با خدا توفیق کنندگان میگویند که این پیشنهاد با ارشادات قرآنی مقایرت دارد زیرا به گفته آنها ترجمه هیچگاه نمیتواند اصلی متن آیه قرآن را بیان کند بعضی از علما در تاجیکستان گفتند سخنان میرزایان تاهین به اسلام است حالند چهار جمادی الثانی مطابق 26 اپریل در شهر دنهاگ این کشور از سال 2007 بدین سو یک محكمه بزرگ به مناسبت جرایم رئیس جمهوری لایبریا جرایان داشت قریب است در این اواخر به پایان رسد. در این هنگام رئیس جمهوری لایبریا به جرم اینکی وی در جنگ سیریلیون از سال 1991 الى 2002 یک لکو بیست هزار نفر را قتل عام نموده بود به زندان ابدی محکوم شد. ترکیه با تاریخی مسکر یک زن هیچ سی ساله ترکیه به جرم اینکی وی خواهان طلاق بود از سوی شفرش به قتل رسانده شد. واشنگتن مرکزی استخباراتی CIA خواهان افزایش حملات تیاره‌های جاسوسی در یمن است در همین حال اشان قانون جدید را به خاطر حملات های جاسوسی در یمن طرح نمودند این قانون اشان عبارت از هدف قرار دادن نقاط مورد نشان و غیر نشان در این هنگام مردم آمریکا این قانون CIA ای را مورد انتقاد قرار داده میگویند که این قانون بجز از غم به ما چیز دیگری نیست الجزایر 8 جمادی الثانی مطابق 30 اپریل مجاهدین تنظیم القاعده در مغرب اسلامی در بدل یک اسیر بریتانیایی، خواهان ابو قطاده فلسطینی شده اند آلمان، دای جمادیستانی در این کشور اوراقی که در آن کاریکاتوری رسول الله صلی الله علیه و سلم رسم شده بود، از سوی بعضی از مردانی که خواهان دخول به پارلمان آن کشورند، توضیح گردیده است. بعد از وقوع این حادثه مسلمانان آن کشور علیه ایشان قیام نموده و ایشان را مورد حملات سنگ قرار دادند. یمن 28 جمادی لوال. در شهر عبیان این کشور مجاهدین 75 تن از اسیران حکومت را ریحا نمودند الا درهای آنان این است که ایشان سوگن یاد کردند که بعد از این علیه مجاهدین و اسرام مبارزه نخواهند کرد بؤيون يا اخبار ابي <تصفيق> زمجر واطلب ما اسمعي يا رصو اصر الشاشن ابي لا تفرح كما شنواندگان عزیز این بود داشته های برنامه امروزی تا برنامه دیگر که در صورت بقای حیات از طریق امواج صدای به خدمت شما قرار خواهیم گرفت همه شما را به خداوند منان می سپاریم جمعه خوشی داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته inviensions seroshashin ul amba